اللّه علی رسول اللّه فاعل التّي يبين القاثرين السّمّين والنّاس الدّائم تعلّق احمرشمني اللّهم صرنا جميع يا شد که بعد از مکو مشکان سری از تسلاو سر یکی از مواقعیسی که در اصول اضافه شد من مسائل و مواقعیسی بود که مربوط به قرد بود قرد اصولا توی اصول قبل از ایشان جایی ندارش ندار نه در اصول اهلسانه و نه در قدمایشیه هست که من تطبخ نکردم اما مثلا قبل از ایشان قبل از شیخ، مرحوم آقای به اصطلاح سیده در مخاطب و اصول برس قط و عنوان تمهید و مقدمه برای مواقص امارات و خودش زید کردند. بسید بعد از شیخ هم مقدمه داری شد بعد شد یه محصولی شد از اول و بعد در محصولی آیان از مواقص اصولی را قرار دادن یکیش محصولی تجربی بود یکیش مسئله این بود یکی چند مسئله همین تخصیم درده که هران داره شدیم که در بردیاز تنگیب یا موضوعی این تقسیم معروف رو جزوه اوحاس و اصول بعد از شیخ قرار. آنجا دارده. این توضیح رو من سابقاً حرض کرد و اضافه شد در جلسه قبل که خود مردم شیخ این تقسیم قطر رو بعد از خود حجیت قطر آوردن مباشردن قطر تقسیم قطر رو اونجا آوردن مشهور و علبان همین کاره کردن مثل مرموم نایمی و که مرموم و سا روش دادن کار مقرره بودیدیم مرموم در این کار و مقرر مصباح و قصور اول بحث تجربی آمده بعد از شرک موضوعی فاصله این که قیدی هم روشن هم به نظر نمیرسه علایه که ما از پرین جدی که به عنوان مصباح و قصور شماری پشت 47 در هر جلده دویم مسواح مسواح موجز میشود. از دوش در همین همانطور که موجز است، آن فاقد وضو است. هر چه بزرگتر است، هر چه شستوشی نه تا آخر است. کسی تا که با سفیدی خالصه است. هر چه سالو یک در سه جرم آیه به سوی رحمتالله علی را زوال داره. و این راجع به محل درست و نظر این جزء مسائل علم درامن این هم یک سؤالیست اصلا این تقسیم بندی قرض که قرض و قسم یا طریقی یا موضوعی و حتی موضوعی رم اختان کرده این جزء مسائل علم سؤال جزء مسائل علم اصول یا نه اینه از الان مستان میکنم این شبا بس که جوابش رو میدن خود شما هم فکر کرده باشه الان فعلا جزء مسائل رسوله و خود این بحث با هم عنوانی که بددن عنوان مثلا در مثل کتاب مرموازی یا اطلاف اقسام درد یا تخصیم کرد و این کتاب بهتر منظوری تخصیم نداشته و این شان بهتر نظر میاد و همهار اینکور مشهور شده که قرض و دو اسم یاد حریفیست که طریق از بخواهه و یا موضوعی از بله حاضر فنمی اینشالله بیه واضحه برای تو. این تقسیم بندی درست نیست این بله حاضر این تقسیم تقسیم سریعی نیست و اونا تقسیم نمیشه به کارش برد چرا چون تقسیم بین دو قسم واقعی یک شکل به کار برد نمیشه قد واقعا دو قسمیست قد یک قسم تنه قدیه پریشون دو قسمیست این قطعه تاریخی گای اوقات در رسانه یک روایتی در رسانه دلیلی به عنوان موضوع عقص این اول داشته میکنه اما قطعه طریقی است اون عباد. این امر اعتباری است قطعه موضوعی اعتباریز. امر اعتباری است تقسیم امر واقعی و اعتباری که درست نیست مثلا بگیم خونه دو جوره یا خونه که خونه هست یا خونه که مرکمن <تصفح> مرکمن عرض نیمیکنه خونه دیگه. این دو میکنه به نظر فنی با خواهد بکنم این نظر فنی خوب دقت بکنه این دو جور نمیشه یه جوره قط یه جوران قطط طریقی جور دیگه نیست. این نمال کلام این قطط طریقی گایی موقع در لسام دلیل اکس میشه خود فرد پوش شنایت میشه راسته. این اعتباره این حقیقی نیست به املاح و این وقتی که اون قرط یا تریجیس یا تریجیس خود این قرطی که در محصمه خودش تریجیس <تصفيق> خود به هم ترجیح یعنی قرط یا به حالت واقعی خودش که تریجیس واقعی نمونه یا در لسان جلیل این اعتبار یا نداره اون احس رو در بعض از موارد تو لسان جری موضوع احس میکن از اینو این هم داره ما چرا بحث قرفی نکردیم چون به قسون ما در اخبار حالا کار به اینش نرسویم میگن من میدونم که زید مثلا امروز درس نرفته راست گفت بیدانه این هم همون تاریخی است این اوردیه ما مثلا در کلماتمون علم رو به کار میبریم گاهی اوقات در کلمات اون تاکید حتما میدونی کاملا میدونی خوب حرف تاکید میکنیم چرا که میه علم تاکید بکنم توی لسان دلیل هم همینطوره بخش لسان دلیلش اوردی تو اون اولی شو بهش کار نداریم چون رفتی بما نداره تو اصول او این, این طور شد قصد در پسیج رو بیم، قصد در لسان عدله در روایاتی که داریم اشارات روایات مآت روایات آیات مبارکه قصد هر جا که آمده و و این و قصد و یقین این طریقیه چون اثر هم اینه که امارات بار مغا موشیدشم این اثر باردشم و از هر این جروز اگر یاد آرومیتی تشتید داشتن استاد سمزه این امسرش یک مثال از ایشون رو برده یه مثال از تاریت به هر احتمالا این مثال تصادفن. این مثال این مثال نیست من دیگه در جرسی جروز توزیرم اینو سکرام نمی کنم از احتمال از لکن عربی از, از و مثلا در اینجا تبیان موضوعی باشه اصلا تریفی رو باشه یکی فرمزن از در آیات و روایات یکیش مثلا این مورد همان موردی که ایشون مسازدادن اون تبیان احتمالاً تبیان موضوعی اصلا در اونجا تریفی نیستیشون پرموزن اما با قطع نظر از کلامیشان اصولاً شما هر در دسانر ویداره قد تریفی مثلا در محبورات ایر در مان باقلال ما این ایر مورد تری هر یک تا لدنی هرمون و لدنی مراد تریدی تلقه لدن تریداتون علا کنی مراد تریدی نیم خواهد یک مثالی داری کن هر اشکاله بس از اینکه حتی این عبارتی مرموم شیخ صدوق نمو کرده مزاکره سوره ایم فیلیده سوره قرد افزر منانده که مثلا این ایم باز هم تریدیه خب بخش بکنیم چون این مذاکره ایل در اون عبارت مراد این نیست و دوتا مرشهه کشم که بحث تنمی بکنن تا حصول فرحی بشه مراد اون چیزی که حجه لذا اگر دوتا مغلل ستا مغلل دوشی در شب قدم هست تو رساله ها را بگذارنی چیز این آشی گفته اون آشی گفته همه مغلل هم, هم این هم مزاکره ستایل برسته بزنی کنی این یقین قصد تری داشتن گزری از اینو دو شب چرا شما اگر انوارق وارد شود بگل آمد که این لباس نجسه شما بعد شک کردید بس تا بوده. تکلیف رو نیوحد یابی داره میره تا دست پوشی مییار تمیز حتی که شاندش طهریت قائم مقام قرض میشه اصل و علل این هم اینم تمیزه اصلا احتیاج ندارم میگم مرحوم استاد برای انثرا دورگیری یه مثال تعریف کرده مثلا موضوعی باشه مثال واجبی انشاء احتیاج به تمام مواردی که ما در قرآن داریم یا در روایت داریم که تبیره به ایلون شده اصل اولیم از ماشد و نظر موارد کمی هست که به نحوه موضوعیت هست شده بس گفته شده در اون روایتی که آمده که انسان در نماز اگر باید در رکعت اول و دوم یقین یعنی شده شده این یقین یعنی موضوعیه در رکعت اول و دوم یعنی احراز بکنه این یعنی رو موضوعی گرفتن یعنی چی موضوع فریضه شرعی چون کسی شک در رکعت اول دوم کرد احتلام نکرد تا اینکه بنا بیینه یا به دو نماز کرد شک داشت در یک و دو بعد از نماز هم فهمید که نمازش جُلش شده بعد از نماز فهمید نمازش درست بوده مثلا شکش بین یک و دو بود بنا به یک گذاشت بعد از اون یک بود یا بنابه دو بذاشت بعد نماز یقین تشاک درست این محل کلامی که نماز درست یا نه؟ اگر طریقی باشه درسته چون میدونی یک بود دو اگر موضوعی باشه درستی اگر موضوعی باشه علم. چون در حین عمل علم نداشت باشن شد؟ چون در حین عمل علم نداشت ولی اون مطابق واقع بود خوب دکت کنید؟ مطابق واقع بود اما علم نداشت همین که ارضالات عمل باثره این اصل میشه خط موجودی پس خیلی بحث روشنه همینطور اساتید هم قدس الله نعمه بحث رو اینجوری وارد شدن نه این قطع دو جوره یا تغییر جو موضوعی قطع یک جوره در بحث ماء مستغمضاف هم شبیه این بحث بود که درست وقت خارج بشید پس براورد ان شاء الله مطلب شد که قطع یانه در اصطلاحات عرفی ما در غیر از قط رو ما بخار میداریم قالبا نگزی که نوزه هشتر بهش قطع است میشه در بعضی از موارد تأکید میگه من قطع داشت قطع داشتی قطع قطع تأکید میگنه میشه این امکان داره اما قالبا طریقیست و در ادلیه شرگیه ما چه کتاب چه سنت براتون مثال براتون زدن جایی که عبارت و علمه هست مزاکره تیلیلت قلب را احضر من از صلاحات و صوم من از صلاحات و عباده و دعا در همین جا این علم علم تریحیز موضوعی نیست تلب العلم تریحیزتان علاقه کل به مسلم این تریحیزت ولی زن امارات هم جانشی نیش اگر آمیه میره سوال میکنه رساله را میگه احکامش یاد میکنه این هم می که تلب العلم تلب می میکنه صرف تلب العلم بیرم میکنه پس اون معیار اساسی شما ديام امارات مقامشه اگر شما نگاه بکنید در اغلب موارد الا ما شذره بنان ده اون صفت صفت به انسان اون فقط قاعده تاریخی اما شما ال شما شما میتونید اعتبار بکنید شما میگید وقتی قعد داشتی الان زهره بیاد دنبال من نگا که ظهر چی یمینی نمیری بس طرفش این کارو نکن چیز سختی نیست اون بس از این بعد آقایان ما من یک کتاب استاد رو میخونم بعد برمیگردیم به صوری از مطلب برای قطع موضوعی تصویر کردن طبق این تصورات ایشان هستند که احصام نمیخواه چون این هردی نداره قابل جعل دیگه این بهشون واقعی که نیست موضوعی اعتباری شوج انواع اعتبارات می‌کنی ما الان در وصول یه چیزی بحث قرار بدیم بحث و چرا حالا سوال آیا این بختم اصولی هست یا نه؟ اینا گفتن چون شما آمدین یک تحریکی در لسان ادله کردین گفتین ای آقا این رو بدون که در اکثر موارد که در روایات و آیات هم و قطع آمده این طریقیه پس این بدون دو فقور دو اینشالله قاهد آمد که قصد که امارات و حجر جالش طریقی میشینن نه مثال دوبونج حتی بعضی از اصول عملیه حالا همه یا بعضی شده حالا می در محله خود روشن شد پس بنابراین این نکته این که اینا این رو گفته این مسئله اصولیه این در کلمات مده ها از زمان شیخ به بعد مطرح شده جو علمه همه هاسه اصول و لذا ممکن است شما فکر بکنید یکی نه این به همون فقر بهتر می تو اصولی خود هرگر یا, یا نهایت ماخبابا اینا تو قواعد فقهی مثلا میوردن شارع تو اصول آوردن حالا ان شاء الله تعالی زمینهشو اندردم که بعد وارد بشی وقت تقسیم بندی هم که ببین مثلا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا به نظر من شیری نداره چرا چون این اعتباریه خوب دقت بکنید در امور اعتباری دنبال طرز نگردید مثلا هر بی نظره فرست تو امور اعتباری دنبال طرز نگردید مگه يوم که موضوع باشه به رحمت حقیقیت يوم که موضوع باشه به رحمت صفتی دو بال فرض شد یعنی فرض چه چیزی زد عالم اعتبار همه چیز غصب کرد ما در عالم اعتبار یک یک امر غیر معقول اش لازم نیاد دو امر غیر اوقلاری لازم نباشه در عالم اعتبار نمیخایید اگر لازم نبود ده ها جور ممکن است با فرض غلط بکنن در لسان موضوع این بحث بحث علمی نیست که این چهار 5 تا6 تا تاست، تا اون آقا تا تاست اون این بحث نقطه علمی ندارم این یه دو نقطه بسیار مهم در این بحث مقدار وقوعشه در اعتبارات به دنبال وقوع بگردیم نه به دنبال فرض. اون وقوع خارجی چیه؟ اون به درد شما میخوره به درب اصول میخوره به دنبال ترز نگردیم یک دنبال وقوع بگردیم که آیا این واقع هست؟ آیا در رسان روایات این آمده یا این نیامده این اجمال هست حالا از شد من سفر که مرحوم آقا بودی فرمودن که گاهی در دلیل عقل میشه بله بعضی شواهد را که احتمال فقط قسم شیخ الهرنساری از هم قطع موضوعی صرفی سلسله بعد الا قسمه بله قطع موضوعی رو میشه تقسیم کرد شاید صحبت موضوعی میشه اعتبار می که مقام متره به اعتبار اندالفه این جزء جزا علحاظ خبره اینان رو گفتن جزء علحاظ اصولی نکته رو بغرب کنید گفتن گفتن فقط اطریقی کن طریقه من اند کردم مئیار در فهم فقط اطریقی در روایات و رسانه از اله چیه سوال مئیاری در هر جا لفظ علم و قطع و احراز و اینجور چیزا به کاران بوده شد این مقتضای خواهد یه خبره طریقی است فقط اطریقی بودن دلیم این یکی دو هر جا موادی به کار برده شد که قاعدتاً کش احراز نحابیده قاعدتاً اما عرف ازش احراز میفرمه به قطعه کنید اونم اگر به کار برده شد مردو با چه قاعده با هم قطعه تریدید مگر دیگه خاصی بسی دیگه اگه در بیابون بودین اندازه قلقه سهم 400 متره. هرکس در بعضی از خطوط بالا نظرش هم کودم صاحب این کامپیوتر من در قدیم اینطور راه بود مثلا گفتن کیری که داریم که مقدار موثرش برد موثری نیست مثل مطلق برد اینجوری حساب میکرد موثر و غیر موثر. حالا ما برد غیر موثر در روا داره 400 قلقه بگردیم از این قلبه سر مادر یقین یعنی توش نیستی وکه اون که می این قلبه سر برای این که ایسان بشه آفیت از این رخصت ببینید رخصت قلبه سر از این هم قرص طریقیت یعنی این یک تقدیر که هر که هرکسی در بیابون چهارسد نگید این طرف داره چهارسد فلسیم کونسد نفر دنه هم کونسد نفر خوشن چهارسد نگید این قلبه سر اون دو نفر حواله سندافن گفتن در این چهار طرف قابیز قابلی دقیق ولی این لفظ قطع و طریق رو توش نیست اما اوز از این ما از این طریقیت می‌زنه یک استکاز اگر اینجا طریقیت بود اصل اولی همون قطع تاریخیه این که هر کسی وظیفه‌ش اینه که بلانش این که میشه نمیشه ممکن از این حرکت وظیفه‌ش اینه که به من چون مثلا از عدله استفاده میکنه که مستحب بس بس از بسنجش شبیدی برای بهسا رمی جنرا هر کسی خودش تنجم بکنه یکی دیگه فقط برای درد و بی سفر جنب بکنه بگیم نه این استقوام خودش است حری ولی عمرش تریه من اینطور سر دسته باشه باشه لكن ممکن است از انسان زلیل نفسیت بفهمه موضوعی بفهمه هر کسی به تنهایی خودش جنب کنه سنگار جنب بکنه این میشه نمیخوام بگم نمیشه چون در نگاه دلیل اخر تاكيد به صورت تغییری هم میشه در طبیعی چند تا دو تا مورد هسته هر جایی که در رساله حکم حکم واقع داره مثلا من با بخان میگه مثلا هر علیکوم الخان در مثل اینجا هر به اگه رو پیدا میکنید تغییری هر جایی که حکم واقع قد در موارد تغییری لازم است علم به خانو باشه حرمت او بفرسته و رضا ایل داشتیم بیانه قایم که با این, این خبریت یکی که پاید قیام بیانه هم که پاید روشن شد مثل می شون پس این معیار که در این مورد به طور طبیعی قصد قصد طریقی الا با تصریح به خلاف این هم که روشن بخورد به عواد این نرخ بخورد برای این استنبال عملا در محام استنبال این فراجه می اینده ما قدر موضوعی چه بسید صوری که ما خدمتون عرض کردیم؟ چون موضوع در اختیار شارعه موضوع در اختیار مقدنه نه. ممکن است که یک رو حجت بکنه بگیم مثلا اگه قصد داری خمره قصد بکن این قصد رو درد به طریقیت ملاحظه کرد یعنی خاص رو به عنوان اینکه طریقه از به احراض خرم ممکن ممکن است صفت قصد رو به عنوان نفسیت ملاحظه کرد کسی این صفت در شما باشه و ازا مرمون استاد حالا من توضیح داره برد ارز که مرموشه خامده از موضوعی یا به اعتبار قد یکون به صفتیه و قد یکون و فلموز، محوضن به, به نهر طریقه و, و, و پس یعنی این صفت باشه بعد خود استاد یه توضیحی دادن که اگر دهره هر درس خونده بشه هر منع ان القدر من از صفات حدییه ظاهر اضافه دو تا نکته داره یکی که سفات یکی دارای اضافه و معنا کنیم من از صفات حدییه این صفات حدییهشون انهم من المتعصله. امور المتعصله مراد اولین از امور متصله چیزی که از مقولات باشه یا جوهر باشه که اقسام خمسه داره یا عرض باشه چه اسم عرض و نحوه است یا اینجوری هست دیگرالا خب از امور متحصله واقعیت در قبار این امور متحصله یا از عراضی از جوهره از جواله در قدار امور انتظاری ما این طوری عرض کردیم انتظاری اموری هستند چون بعضا باعتباری یکی شرستن انتظاری همی هستند چون ما چیزی زیاد نمی کنیم. یه واقعی رو در نظر می گیریم بلاحادی یک واقعی دیگر یک صفتی رو در می هیچ چیز زیاد نمیکنه در انتظار هیچ چیز اضافه نمیشه مثلا این صرف در نظر میگیریم خودمون در نظر میگیریم میگیم فوق از ازش انتظار فوقیت میشین این امور انتظاری که ایشون میگه لا وجود الا للمن که انتظارها چیزی دیگه نداره و فیقبال امور لاعتباریه هر کردم کنار اینا نمیذارم میخوام تکرار بکنم این بنا معنی هست برای اینکه اعتبار با انتظار طرح حتی در عبارات بردی از بزرگان فلاس و این دو تا با همدیگه رقیق به کار برده شده انصافا همین بحثی که آن و ها آینی هم داریم بحث رو آین بحثو. آی تو استثاب توی مقدمات استثاب در فرق بین امور، تکالیف احکام وزی یه اونجا این بحث اصلا یک داره که فرق بین اعتبار و انتظار راسته این هر فرق درسته. ما در اعتباریات درست ما واقعیه کیه. اما ما چیزی رو اضافه میکنیم. مثلا به طرف بگیم نماز بخواه ببینیم یه این اعتماق واقع نداره وجود واقعی نداره اما ما اضافه میکنیم اما فوقیت چیز اضافه نمی کنیم. فقط سخت و بازهی از کل از این مطلب با اصطلاح بگیم باشه پس یک اصطلاح بگذاریم امور انتظائی امور اعتباری امور متأثیر حضرت اصلاح این رو هر بلی نیستون رو برخور بیانه که مشکل داشته وقتی خبار الامور به اعتباری اهلتی لا وجود داره خواه الا به خبار مؤتبر یعنی اینم وجود نداره وقتی شما به زمین در رو باز کن چی نیستون؟ رد رد شما به شما نیستون؟ شما به نیستون؟ یک چیز رو وجود دادیم اما در نیاز اعتبار چی وجود دادیم؟ اون عبارت از مسئله لزوم کردن در باز کردن پس اون خانمی با یک مرد میگه زبشتو که نفس اونا میگه قبل اون خانم هم خانم و خانم هم هم هم هیچ حرک نگرد در به اعتبار یک زوجیت اعتباری ایجاد کرد ایجاد کرد میشه اعتبار چون آن مواسقه درکه یک زوجیت حیلی داریم یا یک زوجیت تشکر شده یا یک زوجیت تلسفی داریم مثل اشانو از وجود ماهیت و هر چیزی وجود داره د یک زوجیت در برای اعتبار نمیداری یک زوجیت اعتباری این زوجیت اعتباری رو زن ایجاد میکنه، کنه زن بشت به نصفی ولی زن نصف این حقیقت اغزه ایجاد زوجیت اعتباری تو به اعتبار زوجیت اعتباری ایهایی این دو تا با هم این رابطه نداشن در از از این هم راوزه خاصی پیدا میشه تکیزا هر با همونم مثل اون فوقیت به من ولیزا آخر که انتظار اعتبار چون چیز اضافه نجد چیزی که شد تو رعا اعتبار شد خود دقات اعتبار موجود تالی موجود و موجود ولی اعتبار نوع تالی اعتبار یا که الواقع لیتو متأثلا لن لظام آقای نیست یه متعصیلی هست زوجیت زوجیتی ایست نیست تو به آقای اعتبار ایجاد شد میگن زوجیت اعتباری ایخایی امشانی این زوجیت ایخایی رو ایجاد کرد خوب دخلت دارمون دید حقیقت عبدالنگاه اینه ایجاد زوجیت پس این متعصیل نیست مثل دیوار نیست مثل رنگ نیست مثل اراز نیست ایشون زمان از سفات هجه بیلم که ان القصد ماله حقا سلواقه این واقع در ذهن ما این صفتیه و نقش هم بلا حاجت الی اعتبار معتبره یعنی اعتباری نیست و لا منشئ انتزاه یعنی انتزایی هم نیست ایشون اینجور دارند مراد این که قصد صفات حقیقیات مراد نیست و معنا کمیات اضافه این از که قرد از تفاقه حقیقی محضر نیست مثل سفیگی دیوار که فقط احتیاج به دیوار داره که لا تختار جفتی وجود داره الا وجود موضوع این قرد البته حالا این قرد جزوه مغوله اعراض داخل داره اعراض یا جوانر یا پرق محولاته اون بحث دیگری ایست که جاش اینجا نیکن اولا بلکل اعراض اللتی لا تحتاج جفتی وجود داره الا وجود موضوع این کل بیان محضر. بل من استفاد ذاته اضافه یعنی برد یه خصفتی داره که در این حالی که در من استفادی در محصولان پیدا شده یک نوع ارتباط هم با خارج داره به من کونی هی محتاج همی وجودی ال متعلق یعنی وقتی من میاد قرار استفادی هم این قرار استفادی هم این قرار استفادی به شیفیده گردی مضافن الی ارتباطی هم که پیدا هم میخ فه این نره این که ما یستحیل و تحققه بلا عالم که داره یستحیل و تحققه بلا معلوم مدراتم از این قبیله فه این نهو لا یعقل تحققه ها الا به قادره ما محضور فلیل این جهتان کونه من از صفات متعصله سانیه کونه و دلغیر و کاشقن هم بلیسان فقط یکونو محفوظن به الموضوع بلغات جهت اولا که صفه متعصله و قد یکونو محفوظم که الموضوع به ملاقظه جهت ثانیه که به اصطلاح تحقق واقعی داره پی نفسش بعد از این ها توضیح و مراد شهر یه دیگه هم از کفایه نمیم که برشتون رو رو میکنم به این تقسیم ها منشه اثر نیست من دیگه متعرضه شمیش اصلا حضور و باستاده شما این مطلبی که فرمودن درسته اما تعجیب از از استاد که صفتیت رو به معنی این که صفت متعسله این مطلب درسته مثل آینه شما ببینید یه چیزی در شما آینه موازی از عکس یا تصویر میوخته خب در آینه هستیه؟ دیگه دیوان دیوا موازی باشه نیست این که یک صفت متعسلی در نفس جای بحث نیست من تذکر از واسه معنی که هم مرادش نیست صفت نیست و زنم هم, هم میتونه مشکرم میتونه بقیه مراد محوم شیخ که دیگه آن مراجعه بکنم برده کلمات متاسفه از شیخ ایشان که یک صفت متاسفه در نفسه که یک نحوه خاصه مرادی از این موضوع گرفتن اون نحوه خاصه زن هم صفت متاسفه نفسانیه اما با اون نحوه نید مثلا فرس مالا بخواییم با قول معروف این رو تبدیل بکنیم به مثلا کیف مبسر مثلا مثلا قطر رنگش سفیده مثلا زن رنگش مثلا خاکستری روشنه اینجا بگم تبدیل مراد شیخ اینه مراد شیخ از صفتیت موضوع اون به نقض صفتیت نه ایش صفتیت از در قامل اعتبار نظر شیخ به تأثیل تأثیل مخلوقانه همه جای برسی اونی که نظر شیخ و بزرگانه تذکیر هم کردن صفتون خاصه به نقضی بکنیم یعنی فرص فقط تریز نیست واقعه یه نوع حالت خاصی هم تو نفس پیدا میشه فرص نفس اطمینان داره آرامش داره اما در زن تردید داره شک داره فرص مثل آبی آبیمونه که صاف استاده آبی که میجوشه با تشریف مخوریم از با تشریف و محسوس مراد مرهوم شیخ اینه خودت بکنی زن مثل قطعی که از صفات نفسانی هم زن موسیقی میشه واقع نشون میده طریقیت هم داره زن به واقع هم میرسیم لیکن بشتی خود صفت نفسی خوب دقیق بکن. در پر یه نوع رنگ خاصیه یه شکل خاصیه مثل یک آب آرامیه مثل آب روان آب آب لوشنیه زن هم آب کلیرگیه مثلا یه آبیه که میجوچه در آیه مبارکه داره که ثانی کیمانه را یاد الی صدره که انما یتعد سما اون حرج چجوریه میگه چه طور انسان میتعد به سام خیلی عجیبه حالا من در, در کوههای اطراف مدينه چینقدره نیست که انسان احساس کمبود فشار هوا بکنه مگر در جاهای دیگه مثلا به الله شما در کوه دما که داریم بالا هر چی بالاتر میشی چون اکسیژن هوا کم میشه احساس تنگی که پس مراد مرحوم شیخ اینه. گاهی اوقات قصد رو لحاظ میکنه به لحاظ طریقیات. اگر طریقیات شو جایزانم طریقیات داره. میذانم طریقیات داره چون گاهی اوقات در حالی که انسان اصابه میکنه به طریقیات در واقع مثلا مثالی که در نماز مثال ارشد کردم. مثلا روشن شد. مراد شیخ اینه که قصد پیوست طریقیات یه شکل خاصی در نفس، یک سفت خاصیه. اون شکل تو زن نیست. خوب اون شکل خواسته صفت نفسانی پس یک صفت سفیده، زن یک کمی مثلا کلره اون با مثال اون صفت زن ورا ممکنه زن هم طریقیت داره چرا مرموم شه این مطلب رو تحرکیم بخواهیم بخواهیم چون قطع از بس موضوع و روشن داره اون جهت خصوصیت صفتیش لحاظ نمیشه این نکته فنیه. یعنی کمتر میاد جایل این خصوصیت رو لحاظ البته روشن دیگه کاملا روشنه این قصد صافه و روشنه اون خصوصیت رو لحاظ نمی کنه خالبا شیخ میگه ندگاهی ممکن خصوصیت لحاظ بکنه باید ممکن این مطلب ایجا درسته و غنده هم از کردن هم استاد و هم کلام مغموشه به قدر فرمایی و ای کاش این بحث هم میوردن اینجا که اینجا از ایشون نیوردن این بحث آقایم تو فقر مقدر کردن از اینجا مخوام خدمتون از برای میکنون کنند این بحث هم با تو فقر اون بحثی کلام میگن تو فقر اردن تو اصول نیوردن ببینید سفات نفسانیی که دارای اضافه ای به خارجه، ببین؟ ارتباط با خارج داره جمعه یه از خارج داره به طور کلی دو جور یک یک جور اینکه نداره فقط طریقی یاد این دیگه خیلی داره این بخواه تأکیل رو منصفت بکنه خیلی امیارت زواهبه ای میخواه یه اده هم حسن نه عنوان ارتباط با خارج داره اما اضافه بر اون هم در نفس یک صفتی ایجاد میکنه یک حالتی ایجاد میکنه. مثال باردش خوفه که میگن اگر شما سفر رسید خوف دوز و خطر بود نماز رو تمام بخانید شکسته نکنید سفر مرزه نماز خوب دکت میکنید انخاف علانه نفس رمت تو دسان روات هم ارسوله انخاف علانه نفس رمت چرا این باقت فرقش چیه؟ فرقش اینه که انخاف علانه سهری اگر میترسه از چه شیده پس این تریفیت داره دیگه رمت؟ باید سلام ناگونی مفعوق باشه <تصفح> مفعوقه رمندی میترسه از چه چیزی داره پس این طبیعیه لكن خود خوب یک صفت خاصه انسان اضطراب داره تشویش داره توی قد این حالت نیست او جایو شیخ مخاطب توی قد درست این حالت نیست این قد داره که اون خود صفت نحسانیت و اون خصوصیش لحاظ نیست اما ممکنه لحاظ بشه ممکن است شاره تو مقام اعتبار دیگه اگر یارقات داری خمری. یعنی اون سفر، یعنی اون روشنایی یعنی اون تاگه ممکن است توی خوف برایشون ممکنه که واضحه ولی زب در بحث این خاف علاوه نسرد. اگه نیست، سفر است مال ایکن. تو بحث نیست درن. یه انجام تریلی سرف کشید. پس اگر ترسید چشید، دزدی گریه و روزگریه و نگریف چشید. روزی چه روز؟ چون رمز نبود، مسلوق نبود. دو سفتیت خاص موضوع تماما سفت باشه خوف من خوف داشتم که چش در بگیرم من اعضای موضوع که داشتم همین چون خوف داشتم موضوع باشه همین که خوف داشتم حال تو خوف من مخواد باشه یا دو سه هر دو باشه به اطلاع های مصولی هم حالت خوف باشه هم محسوب باشه یعنی هم حالت حرج نفسی ناراحتی ای خیلی کنم من امروز روز رو به دیگرم چشمم از درستی بیره چار بکنن به خودم دکتر هم حالت استراب نفسی داره و هم در واقع هم شد خراب بشه پس اگر هر کدام به تنهایی بود موضوع نیست انخواب و الان نفس رمد هر رو با هم باز باشه هم اون حالت خوف باشه هم اون محروب که رمد باشه چشم در باشه که نایی این رو امرون شما خیلی راحت تصور میکنید چرا؟ چون خوف یک صفت خاص به نفسانی باشه اینکه یک راهی رفت خوف دوز داشت رفت آفه دوزن هم همین برس آقایون گرن که آیا نمازه تمام بخون یا گرس شیخ میخواد بفرمون روشن شد مراد شیخ چیه؟ چون استاد شهنگاهی شاید تو صفات متحصله نظر شیخ رو برد تحصول نیست درست این مبحث اصلا نظر روی نیست نظر شیخ اینه که در حال قطع ولو ما یه واقع می‌بینیم یک حالت نفسانی داریم در حال زن نوز درجه ولو واقع رو میبینیم یه حالت دیگر نفسانی داریم خود اونه صفت نفسانی ما مثلا یکیش روشنه روشن یکیش که کدره یکیش خیلیده یکیش که میبینیم مثلا روشنه مثلا ما مثلا به مراد شیخ اینه اون وقت ایشون میگه ولو اون صفتیت قصد قالبا مقصولون انهاست خب دقیقه بکنی صفتیت قصد مقصولون انهاست از بس روشنه مثل خوب نید خوب مقصولون ان نید لاته مهاد شیخ بگه مانعی نداره که به همون صفتیت احضر شه هم به همون صفت نفسانی خاص نه چون جز صفت متصله از بیدیم بس؟ اون صفت خاص باید پیدا بشه اگر صفت خاص فیدا شد و چی میگی؟ میگیم؟ میگیم همارات جانشیش نمیشه چون در حال هماره پس اون زن میشه اون صفت نیست شما واقع رو میدینیم ممکنه اصابه به واقعا بکنه اون صفت نیست پس مراد شیخ از صفتی ید در اینجا صفت خاصه این یک بحث بعدم آین تقسیم کردن اگر صفتیت بود گاهی اوقات صفت تنها تمام موضوعه گاهی اوقات صفت جزء موضوع و واقعا هم جزء دیگر موضوعه این هم نبیشن اول تو آزگوی بحث کردن اینو آموردن و که ناینی بعد از این بحث در آخر بحثشون فرماندن ما در روایات جایی ندیم قد نهر صفتیت موضوع شده باشه با ایشونه. این بی خود احتیاج به بحث نباره اما مراد شیخ رو اول امکان داره اما وقوع نداره چون ببقیم من در جای از صرف ندیدم که اصلا قطع استفتی موضوع شده باشه به نحل استفتی به این که حرف کردم شراب شون یک حالتی کشمی داره که این مندک که در واقع، اون خصوصیت استفتیش لحاظ نمیشه لذا من بخواستیم که خیلی وقت شما نگهی چون خود ما بحثه زیادی بدون دیگه بحث معفوضه به نحل استفتییت و اینجا ا نمی‌کنی به تعبیر مروغا اصلا میگه مثلا این اوغلایی هم خیلی نیست اصلا یعنی متعارف هم نیست که برتر هر ذره بخواد اوقد تاکید بکنه میخواد این صفت باشه و کار به واقع نمیشه باشه اصلا این خیلی بعید یعنی انساان از کسبالات اوغدایی هم خیلی دوری این هست چون پر این قد واسه تعریف ایشون میشه اساس ترگر در نظر نگیره فقط صفتیت سر پس سانجا رو تکرار کرد که ما ان شاءالله فردا به اذن الهی تبارک در قطع موضوعی که به نظر تاریخیات موضوع شده در حقی که در رسانه جدید اخذ شده موضوع شده به نظر تاریخی این ان شاءالله فردا متعرض بشیم ان